داستانهای افسانه‌ای صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه <متصفح> این داستان زمزمه در سالهای خیلی خیلی دور در دهکده کوچکی دو پسر به نام‌های راهو و راجو زندگی می‌کردند که همسن و سال بودند و توی یه مدرسه درس می‌خواندند. راهو درستکار و سخت سخت‌کوش بود. پدر و مادرش و معلم‌های مدرسه بهش افتخار می‌کردند. اما راجو با اینکه پسر باهوشی بود، خیلی متقلب بود. توی تمام امتحانات تقلب میکرد و جواب سؤالها رو از روی دست همشاگردیاش مینوشت. او خودخواه بود و مردم رو با لبخندهای دروغی فریب میداد و از کلمات قشنگ و شیرین برای دلخوشی دیگران استفاده میکرد. از راهو هم متنفر بود چون راهو هیچ وقت توی کارهای ناپسند شریک نمیشد و بهش کمک نمیکرد. میگفت هر وقت برای کارهای خوب به کمکم احتیاج داشتی با خوشحالی بهت کمک می کنم. اما توی کارهای خلاف نباید انتظار کمک از من داشته باشی وقتی تحصیلاتشون تموم شد راجو دهکده رو ترک کرد تا بره و توی یه شهر بزرگ زندگی کنه اما راهو در دهکده موند و متوازعانه در چند هکتار زمینی که از پدرش بهش ارس رسیده بود بکار پرداخت سالها گذشت مسیر زندگی راهو و راجو از هم جدا بود و هیچ اتفاقی برای دیدار دوبارشون رخ نداد یه روز خبر رسید که ذکاوت راجو پادشاه رو تحت تاثیر قرار داده و او به عنوان نخست وزیر منصوب شده راهو از شنیدن این خبر خوشحال نشد چون میدونست راجو فرد درست کاری نیست البته از اینکه که راجو تا به حال به فکر او نبوده و توجهی بهش نداشته، ناراحت نبود. یه روز راهو مجبور شد برای خرید سور و سات جشن به شهر بره. بعد از ظهر به شهر رسید. هوا خیلی گرم بود و راهو خسته و تشنه شده بود. ساختمون مجلل و کاخمانندی رو دید و به سمتش رفت تا از خدمتکار ساختمون یه لیوان آب درخواست کنه. در همین موقع صاحب خونه او را دید و با شگفتی فریاد زد راهو تو اینجا چه کار میکنی؟ راهو به سختی را جور و شناخت. شنلی گرانبه ها از ابریشم نرم پوشیده بود با چینهای بزرگ و توقی از طلا و حلقه های که تو نور خورشید می درخشیدن و یه سربند امامه با طلا و نقره و یاقوت درخشان و خیره کننده وسطش رو تزیین کرده بود جالبتر از همه او مثل یه بشکه چاق شده بود راهو سلام کرد راجو پاسخی نداد در عوض با ترحم گفت چقدر رقمطنگیز شدی این چه لباسایی به تنت کردی مطمئنم تموم راه رو با پای پیاده اومدی خیلی بده که تو حتی یه اسب یا قاطر نداری اما حالا به من نگاه کن ببین مثل یه مهاراجه هستم اینطور نیست به لباسای من نگاه کن، حتی پادشاه هم به من قبطه میخوره. اینا تمامش به خاطر شایستگیه من بوده که به این موقعیت رسیدم. اما تو آدم بی فکری هستی که حتی یه قاطرم نداری. راهو گفت، شاید من فقیر باشم، اما به اون چه دارم قانعم. میدونی که من آدم فکر و اندیشهای نیستم. اگه میخواستم، میتونستم ثروتمند و قدرتمند مثل تو باشم. اما از روش تو متنفرم راجو فریاد زد ساکت شو اگر چون این توانایی داری پس چرا برای گدایی اومدی در منزل من راهو گفت من برای گدایی نیمدم تشنم بود فقط یه لیوان آب میخواستم نمیدونستم اینجا خونه ی توه راجو با صدایی که به شدت میلرزید فریاد کشید حتی یه قطر آبم بهت نمیدم برو گم شو راهو به آرومی جواب داد بسیار خب آقا دارم میرم و از اونجا دور شد اما راجو هنوز راضی نشده بود به دو نفر از خدمتکاراش دستور داد تا راهو رو کتک بزنن و به خیابون پرت کنن راهو با عصبانیت گفت من هیچ صدمه ای به تو نزدم تو بیجهت به من توهین می‌کنی این برات بدبختی میاره راجو در جوابش فریاد کشید میگی هیچ کار اشتباهی نکردی این تو نبودی موقع امتحانا ازت کمک میخواستم مخالفت میکردی؟ خب حالا برای اینکه دلم خنک بشه تو رو تحقیر میکنم اما تو چه کار میتونی با من بکنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی نمیتونی منو تنبیه کنی چون من نخست وزیر پادشاه هستم و تمام وزرا رو من استخدام میکنم فرمانده پادشاه در پایتخت دوست منه خزاندار پدرزنمه و رئیس دادگاه برادر زنم میفهمی؟ راهو در حالی که روی زمین افتاده بود گفت اما شما همگی عاقبت بدی خواهید داشت چند ماه بعد وقتی پادشاه توی باغ تنها بود یه غریبه ی ریشوی بهش نزدیک شد هدیههای های بسیار زیبایی به پادشاه تقدیم کرد بعدش گفت آلی جناب بنده هر روز مخفیانه پنجاه سکه طلا برای شما میفرستم در عوض شما هم به من اجازه بدین که بیام توی دربار و گاهی چند دقیقی توی گوشتون اون چیزایی که دوست دارم زمزمه کنم. پادشاه پاسخ داد. باشه من هیچ زیانی توی این کار نمی بینم. قبول می روز بعد وقتی پادشاه بین وزرا و افسران خودش بود غریبه به سمتش اومد. پادشاه با لبخندی بهش اشاره کرد. غریبه نزدیک شد و در حالی که لبهاش تقریبا گوشهای پادشاه رو لمس می کرد، یواش زمزمه کرد، امروز روز خیلی خوبیه، خورشید می درخشه، حتی یه تکه ابرم تو آسمون دیده نمیشه. اما موقع صحبت با پادشاه و زمزمه کردن توی گوشش، با چشم بیشتر به راجو اشاره می بعد سکه های را رو انداخت توی جیب پادشاه و دور شد راجو اونو تعقیب کرد و رفت و ازش با احترام پرسید آقای محترم چی در گوش پادشاه زمزمه می کردین؟ چرا اغلب من نگاه می کردین؟. و این دقیقا همون چیزی بود که اون غریبه پیشبینی می کرد و می‌خواست اتفاق بیفته اون غریبه در واقع کسی جز راهو نبود راهو با قیافه حق به جانب جواب داد چطور میتونی راجب رازی که بین من و پادشاه از من سوال کنی و بخوای که برات فاش کنم؟ ترس راجو بیشتر شد زانو زد و صد سکه یه تلا مقابل راهو گذاشت و گفت بعد از ظهرم صد سکه یه دیگه بهت میدم تا این راز رو با منم درمیون بگذاری راهو وانمود کرد که ای به این کار نداره راجو التماس کرد راهو نشون داد که یکم متقاعد شده پس آرام گفت که موضوع خیلی جدیه ادهی از مردم به شاه گزارش دادن که تو رشوه میگیری. پادشاه از من خواسته که دربارت تحقیق کنم راجو با نگرانی گفت خوب تو امروز چه گزارشی به پادشاه دادی آقای محترم؟ راهو جواب داد من به پادشاه گفتم هنوز دارم تحقیق می کنم. راجو با التماس گفت آقای محترم به من رحم کنید منم قول میدم در عوض هزار سکه طلا بهتون بدم. راهو مقتدرانه گفت باید ببینم چه کار می توانم برات انجام بدم. روز بعد دوباره راهو پادشاه رو به همون وضعیت قبل ملاقات کرد و تو گوشش زمزمه کرد. به زودی بادی از سمت شمال بیرحمانه خواهد وزید اما حالا به نظر میرسه که مسیر باد در جهت شمال شرقه و باز موقع زمزمه کردن به راجو نگاه کرد. پادشاه به اون کلمات چرند مرد غریبه لبخند میزد و خوشحال بود که در مقابل اینکه بهش اجازه داده توی گوشش زمزمه کنه روزانه پنجاه سکه طلا دریافت میکنه. وقتی قلب راجو مثل قلب ماهی اسیر توی تور می تپید به دیدن راهو رفت راهو بهش گفت پادشاه رو متقاعد کردم که نخست وزیر هیچ کار اشتباهی انجام نداده که مورد سرزنش باشه راجو ازش تشکر کرد و هزار سکه طلا بهش داد روز بعد وقتی راهو داشت زیر گوش پادشاه درباره مه و بارون ریز بیرون پچ پچ می کرد مرتب نگاهش رو به فرمانده پادشاه مینداخت اکسل عمل فرمانده هم مثل راجو بود به این ترتیب راهو هزار سکه دیگه هم دریافت کرد و در چند روز آینده موفق شد همه ی رؤسا خزاندار و در نهایت رئیس دادگاه را هم بترسونه و به ازای هر سکه تلایی که هر روز به پادشاه میداد، بیشتر از ده ها هزار سکه به دست بیاره یه روز وقتی دربار خیلی شلوغ بود و درباریان کارکنان عالی رتبه، فرمانده ها همه حاضر بودند، راهو پشت سر پادشاه ایستاد و گفت پادشاه، در این روزها من کلمات چرندی رو زیر گوش شما زمزمه کردم، اما امروز این کیف چیزهای مفیدی رو برای شما آشکار میکنه بعد یک کیف ابریشمی جلوی پادشاه قرار داد که صدای جیرینگ جیرینگ ده ها هزار سکه طلایی که توش بود زمزمه خوشاهنگی توی گوش پادشاه داشت پادشاه فکر کرد این غریبه یکم خلوزه با این همه پرسید لطفا توضیح بده که موضوع چیه راهو تمام اتفاقهایی رو که افتاده بود نقل کرد و به طلاها اشاره کرد و ادامه داد این شاهد و گواه قاطع دروغگویانیه که شما رو محاصره کردند اگر نخست وزیر و بقیه رؤسا و افسرای عالی رتبه شما راستگو بودن اگه فرمانده وظیفش را با وفاداری انجام میداد اگه خزاندار و رئیس دادگاه رشوه نمیگرفتند پس نباید به آسانی وحشت زده میشدن و خودشون رو تسلیم میکردند اونم فقط به خاطر اینکه من موقع زمزمه در گوش شما بهشون نگاه میکردم پادشاه بلا فاصله متوجه شد که افسرا و کارمندای عالی رتبه او دارن از موقعیت‌هاشون سوء استفاده میکنن و افراد نالایقی هستن که از مردم رشوه میگیرن به همین خاطر همیشه در ترس و واهمه به سر به این ترتیب چهره واقعی راجو و دوستانش رو شد و زندگی که با دروغ و رشوه ساخته بودند از هم پاشید پادشاه راهو رو به عنوان نخست وزیر منصوب کرد و راهو هم به سرعت یه گروه از افراد امین و راستگو و سختگوش رو پیدا کرد و در مقام مهم به کار گماشت تا در خدمت پادشاهی باشن که دیگه تصمیم گرفته بود آقلانه تر حکومت کنه